حپانصونونه وقتی قمر و زمان دست از زدن نخستوزیر برداشت نخستوزیر گفت من حاضرم هرچه میل دارید به سلطان بگویم قمر و زمان گفت به سلطان بگو من حاضرم با همان دختری که دیشب نزد من فرستاده بودید ازدواج کنم. هر چه زودتر برو و پاسخ سلطان را بیاور وزیر تعظیمی کرد و رفت و در را رو روی قمر و زمان بست به محض دیدن نخست وزیر سلطان پرسید وضع قمر و زمان را چگونه یافتی نخستوزیر پاسخ داد آنچرا که كه به عرض سلطان رسانده تماما صحت دارد و آنچرا که قمر و زمان توضیح داده بود برای سلطان بازگو کرد سلطان نگران شد و تصمیم گرفت خود به سراغ پسرش رود سلطان نزد قمر و زمان رفت و چند جملهای بین آنها رد و بدل شد تا اینکه سلطان یک دختری که قمر و زمان در جستجوی او بود از او پرسش هایی کرد و زمان پاسخ داد من حاضرم با این دختر ازدواج کنم و دیگر هیچ مخالفتی با ازدواج ندارم و آرزوی من این است که سلطان دست این دختر را در دست من بگذارد سلطان که از سخنان فرزند خود بفت زده شده بود گفت پسرم سوگر میخورم که من یک کلمه از آنچه که درباره این دختر پریپیکر می‌گویی، اطلاعی ندارم و اطمینان دارم با افکار مخشوش به خواب رفته ای. و در عالم رویا او را دیده ای و کسی به قلعه نیامده زیرا هر کس که به قلعه بیاید باید با اجازه من باشد قنار و زمان تمام جزئیات را برای پدر درباره دختر بیان کرد حتی بوسیدن او و بیدار نشدن دختر را با آن همه تکانی که به او داده بود و همچنین رد و بدل کردن انگشترها و بعد هم انگشتری دختر را که در انگوشت داشت به سلطان نشان داد و گفت انتظار دارم که با این دلیل روشن سخنانم را رو بپذیرید. برای سلطان کمترین تردیدی باقی نماند که آن چرا که پسرش بیان می کند حقیقت دارد. در فکر فرو رفت و نتوانست از به زبان آورد. قمر و زمان از این موقعیت استفاده کرد و به سلطان گفت: از دیشب تا این لحظه تمام فکر من درباره آن دختر دور میزده و از شما میخواهم که با همسری او مرا خوشبخت سازید و میدانم که شما می توانید این کار را انجام دهید. زیرا شما او را میشناسید. سلطان گفت: پسرم، اگر من این دختر را میشناختم همین لحظه ترتیب ازدواج تو را با او میدادم. این بزرگترین آرزوی من است، ولی نمی‌دانم چه کار باید کرد. هرچه تو درباره حضور دختر در کنار خودت می‌گویی، صحیح به نظر می‌رسد، زیرا دلیل آن وجود این انگشتر است که در انگشت داری، اما نمی‌فهمم این دختر چگونه توانسته به درون برج راه یابد و این برای من معمایی شده است. و اگر خداوند توان این معما را برای من روشن نسازد آم... آن وقت من تو از فرش بلا تکلیفی و ناراحتی فکری طرف خواهیم شد تو به علت ناامیدی و یه از ازدواج با دختر و من هم به خاطر اندوه و قصه تو از بین خواهم رفت خدا خودش با نور رحمتش این قضیهٔ تاریک را رو روشن سازد و پرده از روی این معما بردارد عمر و زمان دچار بیماری شدیدی شد و در بستر افتاد و سلطان هم که جانش به او بسته بود دست از همه چیز کشید و در همان اتاق فرزند در جوار او نگران سلامتی او بود فقط نخست وزیر اجازه دیدن سلطان را داشت تا اینکه روز نخست وزیر نزد سلطان آمد و گفت تمام درباریان و مردم نگران وضع کشور و وضع سلطان هستند زیرا سلطان به امور مملکتی نمیپردازد و در هیچ کجا مردم او را نمیبینند و رفت و رفته شایعاتی در میان اهالی پدید آمده است پذیر ادامه داد چنانچه سلطان بپذیرند بارگاه سلطان را به قصر دیگری که در جزیره کوچک واقع شده است انتقال دهید تا شاهزاده قمر و زمان هم در آنجا بروند و هوای متدل آنجا برای بهبود حال شاهزاده مساعد تر است و سلطان هم در آنجا هفته ای دو بار اجازه دهند که به امور مملکتی رسیدگی فرمایند و مردم برای درخواست هایشان به حضور بیایند سلطان این پیشنهاد را پذیرفت و با شاهزاده قمر و زمان به آن قصر رفتند اطی دو روز مردم میتوانستند حضورا سلطان را ملاقات کنند و بقیه ای ایام را سلطان در کنار فرزند خود به سر میبرد و با او هم دردی میکرد و اما شاهزاده خانم دختر امپراتور چین وقتی توسط جنها دوباره به قصری که امپراتور او را زندانی کرده بود برگردانده شد و از خواب بیدار شد به اطراف خود نگاه کرد و از آن جوان زیبا اثری نیافت شاهزاده خانم شیون کرد و بر اثر صدای او داییش که همراه نه تن ندیمه سار خورده با او بودند نزد او آمد و علت را جویا شد شاهزاده هم پرسید جوانی که دیشب در کنار من در همین بستر خوابیده بود کجاست من با تمام وجودم او را دوست دارم دایه پاسخ داد بانوی من ما از وجود چنین جوانی در کنار شما بیخبریم و شما که او را دیدید برای ما بیشتر توضیح دهید شاهزاده گفت شب گذشته زیباترین جوانان در بستر من خوابیده بود من با یک نگاه به او علاق من شدم و او تمام مدت در خواب بود هر قدر که او را تکان دادم متأسفانه از خواب بیدار نشد دویه شهستاد خانم پاسخ داد بانوی من دیشب من تا صبح در اتاق شما بودم و اطمینان می دهم که هیچ کس در این اتاق وارد نشد زیرا همه ی ندیمه ها در گوشه و کنار و پشت در این اتاق خوابیده بودند و در اتاق هم گفت بود و کلید آن در جیب من بوده است با شنیدن این سخن شاهزاده خانم کاسه صبرش لبریز شد و گیسوان دایره را در شنگ گرفت و او را به هر طرف میکشانید و با فریاد میپرسید آن جوان کجاست شماها با جادوی خود او را پنهان کرده اید اگر نگویی او کجاست مغزت را متلاشی خواهم کرد بیچاره دایه راهی برای رهایی از دست شاهزاده خانم نداشت و همچنان دست و پا میزد و گریه کرد. بالاخره توانست فرار کند و به نزد ملکه مادر شاهزاده خانوم مرود و موجرا را برای او تعریف کند ملکه با حیرت و مثل مسخنان دایه گوش می‌داد دایه به این نتیجه رسید که به شاهزاده خانوم حالت دیوانگی دست داده است زیرا تصور می می‌کند که ما جوان زیبایی را که شب گذشته در کنار او خوابیده بود پنهان کرده ایم بالاخره ملکه نزد شاهزاده خانوم رفت در کنار شاهزاده نشست و از حال سلامتی او پرسید شاهزاده خانم پاسخ داد من شماها را راحت نخواهم گذاشت مگر که مرا به همسری آن جوان زیبایی که نزد من خوابیده بود درآورید شما باید بگویید او کجا رفته من از امپراتور تقاضا دارم او را دوباره نزد من برگردانند ملکه به دخترش گفت دخترم من نمیدانم تو درباره کدام جوان زیبا صحبت کنی شاهزاده خانم هم با کمال بیحرمتی میگفت، آن وقتی که من قصد ازدواج نداشتم مرا مجبور به ازدواج میکردید. حال. حال که قصد ازدواج دارم و میخواهم با این جوان ازدواج کنم، نمیگذارید من حتما همین جوان را می‌خواهم و اگر او را به من نرسانید، خود را خواهم کشت. ملکه هر چه با سخنان نرم و مادرانه خود، دخترش را آرام کند، موفق نشد و ناچار با حالت نگران او را ترک گفت و نزد امپراتور رفت. وقتی امپراتور حکایت دخترش را از زبان ملکه شنید، بیدرنگ به نزد دختر آمد. و با او به گفت او پرداخت: دختر همان سخنان را تکرار کرد و او هم حققذ با او صحبت کرد سودی نداشت و حالت دختر را خطرناک دید و نگران شد که شاید به خود و یا به دیگری آزاری رساند. امپراتور دستور داد تا دختر را در زنجیر کشند و دو نگهبان هم در جلوی در ورودی بگمارند و دایی فقط از نزدیک مراقب او باشد. امپراتور بسیار نگران دخترش بود. مشاورین و پزشکان خود را و موضوع را با آنها در میان گذاشت و درخواست جویی کرد حتی برای تشویق آنها گفت هرکس دخترم را درمان کند او را به داماده خود برخواهم گزید تا جزء خانواده سلطنتی گردد جایزه‌ای که سلطان برای دهنده دخترش تعین کرده بود موجب شد که یکی از عمرای سالخورده او که جزء مشاورین سلطنتی بود و از علم صحر و افسون هم بهره کافی داشت دفتره به درمانش آساده گردد سلطان که آمادگی امیر سالخورده را شنید گفت این را هم بدانید که اگر کسی پیش قدم درمان کردن شاهزاده شود ولی نتواند موفق شود سر خود را از دست خواهد داد تا در برابر چنین پاداش بزرگی بی جهت مرا امیدوار نکند امیر شرط سلطان را پذیرفت و امپراتور امیر را همراه خود به قصر شاهزاده خانم راهنمایی کرد و شاهزاده همین که دید آنها از دور به سوی او می‌آیند صورت خود را با پارچه پوشانید و فریاد کرد طبق دستورات دینی بیگانه نباید صورت مرا ببیند سلطان گفت دخترم این مردی که از امیرانم است که میخواهد داماد من شود شاهزاده قمنین امیر را نمیخواهم فقط همون جوانی را که اول فرستاده بودی میخواهم امیر که فهمید ناراحتی شاهزاده بیماری عشق است فورا خود را به روی پاهای سلطان انداخت و گفت پادشاه ها. من قادر به علاج دختر شما نیستم زیرا او عاشق است و درمان او فقط رسیدن به مشوق است من جان خود را در اختیار شما می گذارم. سلطان هم فوراً دستور داد تا سر از پیکر امیر جدا ساختند. چند روز بعد از این واقعه، سلطان اعلامیه‌ای در پایتخت کشورش صادر کرد و در آن از کلیه ی پزشکان، شناسان و جادوگران خواسته بود که برای درمان بیماری شاهزاده خانم آمادگی خود را اعلام دارند. ولی اگر نتوانند بیماری شاهزاده را درمان کنند، جان خود را از دست خواهند داد. این اعلامیه در کلیه شهرهای عمده و استانهای امپراتوری و همچنین در کشورهای همسایه نیز منتشر گردید. نخواستیم کسی که پس از این آگهی قدم پیش گذاشت، ستار شناسی بود که در عین حال جادوگری هم میدانست. او را به قصد شاه داده که در آن زندانی بود، آوردند و او هم بساط رمل استرلا استرلاب خود را پهن کرد و از لحاظ شناسی در جدول مخصوص بررسی کرد و آنگاه داروهایی را به صورت بخور، دود و غیره روشن کرد و بعد هم گفت: "باید ارواح شریر را از بدن شاهزاده خارج کنم و آنها را در ظرفی داخل کرده و آن را به دریا اندازم." شاهزاده گفت: "من نیازی به این کارها ندارم و کاملا از لحاظ عقلانی سالم هستم. من عاشق آن جوان زیباییم که چند شب پیش در نزد من خوابیده بود و حتی کوشش کردم نتوانستم او را از خواب عمیقش بیدار کنم. این کارهایی که شما مها می‌کنید بی فایده است و وقت تلف می‌کنید." ستارشناس نزد سلطان رفت و گفت کلیه درمان‌هایی که لازم بوده است انجام دادم اما هیچ کدام نتیجه بخش نبوده زیرا بر من معلوم گردی که شاهزاده خانم عاشق است و درمان درد او به دست شماست و سلطان باید جوان مورد علاقه او را در اختیارش گذارد سلطان از سخنان شناس سخت کشمیچ شد و دستور داد گردن او را هم زدند بعد از آن به تجرید حدود پنجاه تن ستاره شناس و جادوگر برای درمان بیماری شاهزاده خانم آمدند و چون نتیجه از کارهای خود نگرفتند جان خود را از دست دادند و بعد از آنکه سر آنها را از پیکر جدا میساختند ساختند به دستور سلطان هر کدام را بر سر یکی از دروازه های شهر آویزان میکردند تا عبرت سایرین شود و بیهود قدم جلو نگذارند دایی شاهزاده خانم پسری داشت به نام مرزبان که برادر شیری شاهزاده بود و هر دوی آنها را از سینه شید داده بود و بزرگ کرده بود و همدیگر را خواهر و برادر میگفتند این پسر از همان دوران کودکی رغبت بسیار به فراگرفتن علوم از خود نشان داد و در علم هندسه و ریاضی و دانشهای دیگر از استادان فن بسیار آموخت و بعد از آن برای تکمیل دانش خود مدت چندین سال به کشورهای بیگانه رفت و در علم و جادو و ستاره شناسی سرآمد دیگران گردید بعد از سالها دوری از وطن مرزبان به چین بازگشت و میبیند که بر سر هر دروازه سر انسانی را آمیخته اند را میپرسد و متوجه میشود که داستان از چه قرار است خلاصه مرزبان نزد مادر خود به قصد آید و بعد از سالها دیدارها تازه میشود و مادر شرح بیماری شاهزاده را برای او به تفصیل بیان میکند مرزبان به مادر پیشنهاد میکند تا او را بدون اطلاع سلطان به دیدن شخصاد خانون ببرد. مادر هم میگوید سب کن تا در فرصت مناسب ترتیب کار را بدهم دایه که میدانست بدون اجازه خاجب باشی که رئیس نگهبانان داخل قصر بود هیچکس نمیتواند به قصر وارد شود به نزد او رفت و گفت من دایه‌ی شاهزاده هستم و او را از زمان شیرخارگی با دخترم که با او هم سه سال از بزرگ کرده ام و آنها با یکدیگر خواهران شیری هستند و این دخترم به دیدن او میآید آنگاه مرزبان را لباس دخترانی پوشانید و با اجازه خاجه باشه نزد شاهزاده میبرد. مرزبان نقاب از چهره برداشت و گفت خوشحالم که از عزیزم را بعد از چندین سال دوری و بیخبری در مقابل خود میبینم. شاهزاده هم از شادی دیدار برادر خود فریاد کشید و گفت خدا میداند چقدر از بازگشت تو خوشنودم. این همه سال همه ما را در بیخبری گذاشته بودی و حتی مادر عزیزت هم از سلامتی و وضع احالت تو در کشورهای بیگانه بیخبر بود. تو برادر عزیز من بوده ای یا هستی و از کودکی با یکدیگر بازی میکردیم و همراه هم بودیم، خدا رو شکر که دوباره نزد ما بازگشتی مرببان گفت: شما هیچ ناراحت نباشید، من درمان درد شما را که دیگران از آن آجز بوده اند در اختیار شما خواهم گذاشت و اینک حاصل تحصیلات و زحمات خود در چند روزی که شما به آن نیاز دارید، برای برطرف ساختن ناراحتی شما مورد استفاده قرار میدهم. شفا خوشبختی شما بهترین پادوش من خواهد بود آنگاه مرزبان داخل کیسه‌ای که همراه آورده بود کتابی درورد و چیزهای دیگری هم از جیبش بیرون آورد و مطالعه پرداخت در این هنگام شانسادی به صدا درآمد و گفت می کنی برادر تو هم که مشغول همان گونه تدارکات اشخاص دیگر هستی مرزبان گفت خواهش دارم را که میگویم؟ دقیقا توجه کنی، جزئیات واقعی را برایم ش بده. شاهزاده تمام جزئیات واقعی را بدون کم کمکاس برای او بیان کرد حتی وجود انگشتری که متعلق به خودش نبوده و این در انگشتش است و نبودن انگشتری خود همه را شهر داد و انگشتر در انگشت خود را به مرزبان نشان داد و گفت من میدانم که انگشتر مرا درآوردهاند و این انگشتر را به جای آن به انگشت من کرده اند اما نمیدانم این واقعه چگونه صورت گرفته و به همین دلیل ارتباط این نکات را با یکدیگر نمیدانند و مرا دیوانه تصور کردند. این عین آن چیزی است که برای من اتفاق افتاده و من خودم در عالم بیداری آن جوان زیبا روی را دیدم که در کنار من به خواب امیقی رفته و سخنانم و حرکاتم را نتوانست درد کند و بیدار نشد. هنگامی که شاهزاده سرگذشت خود را بیان میکرد، مرزبان با بخت و حیرت به آن گوش میداد و افکار خود را کاملاً متمرکز ساخته بود و به نقطه ثابتی خیره شده بود گویی در پی یافتن راه حل است بعد از مدت سکوت بالاخره لب به سخن گشود و به شاهزاده گفت آنچه میگویی کاملا با حقیقت وفق دارد من بیماری تو را تشخیص دادم و باید به دنبال کسی که به او علاقه داری بروم و آنقدر جستجو کنم تا با نیروی اندیشه و تدبیر او را بیابم و مشکل تو را به پایان برسانم و از تو خواهش دارم تا آن زمان در کمال بردباری و متانت در انتظار بازگشت من باش چون با این شیوه و رفتار به خود خودخواهی رسید شاهزاده هم قبول کرد و مرزبان از نزد شاهزاده بیرون رفت و آماده شد که روز بعد سفرش را آغاز کند مرزبان از شهری به شهری میرفت و در تكاپوی یافتن جوان زیبایی بود که شاهزاده او را در کنار خود دیده بود در همه شهرها نام شاهزاده خانم به گوش می رسید که آوازه او به همه جا رسیده بود. بالاخره بعد از چهار ماه مرزبان به بندری وارد شد که آن را ترفه می نامیدند. طرفه شهر پر جمعیت و آبادی بود که در آنجا نامی از شاهزاده بدور به گوش نمی رسید و همه مردم درباره شاهزاده قمر و زمان صحبت می کردند و می گفتند این شاهزاده هم مانند خانم بدور بیماری ناشناختهی دارد که همه پزشکان از درمان آن عاجز ماندند. مرزبان از آگاهی بر این خبر بسیار شاد شد و نام محلی را که میتواند قمر و زمان را در آنجا ملاقات کند به دست آورد. او سوار کشتی شد و خود را به آن شهرستانی که در واقع پایتخت کشور شاه‌زمان بود. اما پیش از رسیدن به بندر، کشتی آنها به تخت سنگ بزرگی برخورد کرد و غرق شد و مرزبان تا ساحل شنا کرد. از غذای روزگار محل غرق کشتی نقطه ای بود که در مقابل قصر پادشاه واقع شده و نخست وزیر مرزبان را که به ساحل رسیده بود مشاهده کرد و دستور داد او را یاری کنند و به حضور وزیر ببرند مرزبان هم لباسهایش را تغییر داد و نزد نخست وزیر حاضر شد نخست وزیر از هر دری و او سخن گفت و او را جوانی آگاه و دانا تشخیص داد و گفت پادشاه این کشور و خانواده او و تمام درباریان در کسالت یک یکی فرزند سلطان دوچار اندوه بزرگی هستند آنگاه شرح حال قمر و زمان را از تاریخ به دنیا آمدنش و تربیت و تحصیلاتش و مراقبت سلطان برای او به تفصیل بیان کرد و درباره سخنان قمر و زمان و عشق او به دختر بسیار زیبایی که او را شبی در کنار بستر خود دیده است که در خواب بوده توضیحات کافی داد و از مرزبان پرسید آیا تو میتوانی شاه ساده را درمان کنی؟ مرزبان پاسخ داد چنانچه اجازه فرمایید شاهزاده را شخصا ملاقات کنم، بهتر خواهم توانست پاسخی شما را بدهم مرزبان با آگاه شدن از سرگذشت شاهزاده تردیدی نداشت که او همان جوانی که كه خانم او را دیده و به او دل باخته است چون سرگذشت هر دو عینا یکیست و هر دو هم انگشتری دیگری غیر از انگشتری خودشان در انگشت دارند هنگامی که مرزبان را به اتاق شاهزاده غمر زمان راهنمایی کردند ویرادی که در بستر افتاده و چشمانش را بسته است و سلطان هم در کنار بستر او نشسته و به فرزند یگانه‌اش نگاه می کند. اما از ترجبو حیرت نتوانست خودداری کند زیرا شباهت بسیاری در صورت شاهزاده و شاهزاده خانم بدورا نمایان بود مأمون احترام شایسته به سلطان نشان داد و در کنار شاهزاده نشست و از روی تیز هوشی و فراست سقراطی گفت که شاهزاده را خوش آمد و چشمانش را گشود و به او خوش آمد گفت مرزبان درباره شکل و صورت و خصوصیات شاهزاده خانون بدورا سخنانی گفت و اشاراتی کرد که برای قمر و زمان یقین حاصل شد مرزبان او را میشناسد در نتیجه حس کنجکاویش برانگیخته شد و آثار شادی و بر سیمایش نمایان شد ضمنا مرزبان سخنان خود را به صورت شعر بیان میکرد و شاهزاده بیشتر شیفته او گردید به طوری که به سلطان اشاره کرد آنها را تنها گذارد و سلطان هم از اتاق خارج شد ولی بسیار شاد بود زیرا آثار بهبودی را با حرکات و سخنان و لبخندهای فرزندش احساس می‌کرد. پیش از که جوان تازه وارد را با فرزندش تنها بگذارد، بازوی مرزبان را گرفت و او را به جای خود نشانید و از نام و کشور او پرسش‌هایی کرد. و همین که فهمید از امپراتوری چین میآید، فریادی از خوشنودی برآورد و گفت: خدایا، فرزندم از این افسردگی روحی رهایی خواهد یافت. و من از این جوان دانا تا آخر عمر سپاسگزار خواهم بود آنگاه آنها را به حال خود گذاشت و با حیجان و شور از در بیرون رفت و نزد نخست وزیر از این جوان تازه وارد تعریف ها کرد مرزمان وقتی با قمر و زمان تنها شد به او گفت اینک خوشحالم که به شما بگویم دختری که شما عاشق او هستید خانم خانون بدورا دختر سلطان کشور چین است و او هم آشق شماست من براساس آنچه از شما و آنچه از شاهزاده بدورا شنیده ام به این نتیجه میرسم که هر دو عاشق یکدیگر هستید و من به شما قول میدهم که هر دوی شما از این ناراحتی و اثر دگی خواهید خواهی یافت. شما باید یک قدر به خودتان برسید تا از این رنجوری و ناتوانی جسمانی خارج شوید. سخنان مرزبان تاثیر بسیار سودمنده در قمر و زمان کرد و نور امیدواری دل او را روشن و گرم ساخت. و کوشید تا هرچه چه زودتر نیروی خود را به دست آورد و قبل از که سلطان به اتاق برگردد، امر زمان لباس پوشید و کاملا به حالت عادی جلوه شد و سلطان پس از بازگشت به اتاق، از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. سلطان مسمان را در آغوش کشید و او را مورد محبت قرار داد و بدون آنکه شیوهی او را در درمان فرزندش سؤال کند، به اتاق مجاور رفت و به نحوست دستور داد. بهبودی شاهزاده را به آگاهی مردم برساند و در سراسر پای تخت و دیگر شهرها جشن و سرور برپا کنند فقرا را یاری کنند و زندانیان را از بند رها سازند و شهر را آزین ببندند در هر گوش امپراتوری پهناور سخاوت و مساعدت سلطان اثر نیکویی در روحیهٔ همگان بخشید شاهزاده قمر و زمان که سر غذا نخوردن و اندوه کاملا رنجور شده بود با امیدی که در قلب او پدیدار شد به زودی سلامتی خود را یافت و نیروی بدنی او به حدی رسید که میتوانست رنج سفر را بر خود هموار سازد. هنگامی که خود را آماده سفر دید مرزبان را کناری کشید و گفت ای مرزبان عزیز. اینک زمان آن رسیده است که به عهد خود وفا کنی و هر چه زودتر من و شخصاد بدورا را از غم جدایی رهایی سازی. من در آتش اشتیاق می سوزم و مطمئن هستم شاهزده بدورا هم به همین سوز و گداز گرفتار است. خواهش من از تو این است که هر چه زودتر سفر را آغاز کنیم وگرنه دوباره به همان حالته افسردگی برمیگردم. اما هنوز یک چیز مرا رنج میدهد و آن دست دستاوردن رضایت سلطان در رفتن من است نمیدانم چه راهی وجود دارد مرزمان گفت من ترتیب آن را میدهم. به هیچ وجه در این باره فکر خودت را ناراحت نکن فقط به سلطان بگو چون مدتهاست از هوای آزاد و گردش در اطراف شهر محروم بوده‌ام اگر حس می‌کنیم که هوای آزاد و یک سفر دو سه روزه برای شکار به کلی حال ما جا خواهد آورد بدون تردید سلطان این پیشنهاد را خواهد پسندید پس از سایت سلطان دستور دهید دو اسب تندرو در اختیار من قرار دهند بقیه کارها را به عهده من بگذارید روز بعد قمر و زمان از سلطان درخواست اجازه برای سفر کرد و سلطان هم با هواخوری و شکار دو سه روزه موافقت کرد و قمر و زمان را به دست مرزبان سپرد و مهتران سلطنتی دو اسب تند رو در اختیار آن دو گذاشتند آنگاه سلطان فرزند را در آغوش گشید و او را بوسید و سفر به خیر گفت قمر و زمان و مرزبان سوار بر اسبها شدند و راه سفر در پیش گرفتند تمام روز اسب تاختند و هنگام غروب به کارون سرایی وارد شدند تا شب را استراحت کنند سحرگاه مرزبان قمر زمان را از خواب بیدار کرد و بدون آنکه دو مهتری را که به همراه آورده بودند بیدار کنند، مرزبان لباس غم و زبان را گرفت و پوشید و لباس دیگری که در خورجین اسب بارکش به همراه آورده بود به غم و زبان داد. آنگاه بر عصب های تازه نفس سوار شده و با سرعت دور شدند. مرزبان افسار اسب یکی از مهترها را به دست گرفت و آن را به دنبال اسب خود به حرکت درآورد. با فرارسیدن روز، آنها وارد جنگلی شدند که به چهار طرف راه داشت. مرزمان خود را به کناری کشید و با خنجری که همراه داشت، گلوگاه اسب مهتر را درید و سپس لباسی که قمر و زمان در ابتدای سفر پوشیده بود، با خون اسب آغشته کرد و به وسط جاده انداخت. شاه علت چنین عملی را از او پرسید و وی پاسخ داد: چون بعد از گذشتن چند روز از تاریخ مسافرت ما، سلطان ناراحت و نگران خواهد شد، بدین است فرمان می‌دهد که در جستجوی ما برایند. و آن ما را دیر یا زود دستگیر میکردند و نقشه ما نقشه برآب می شد با این کاری که من کردم وقتی لباس آغشت به خون شما را به دست آورند خواهند گفت که شما را حیوانات زرنده جنگلی دریده اند و از دنبال کردن بیشتر دست بر دارند قرارا زمان گفت به هر حال پدر پیر و علاقه مندم بسیار ناراحت خواهد شد و ممکن است جان خود را با اندوه قلبی از دست بدهد پاسخ داد. هنگامی که مژده‌ی تندروسته‌ی تو را دریافت کند، این ناراحتی جبران خواهد شد. بعد از این گفتگو شاهزاده و مرزبان به سفر طولانی خود ادامه دادند تا به بندری رسیدند و از آنجا با کشتی به سوی آب‌های کشور چین حرکت کردند و بعد از مدتی طولانی به پایتخت چین رسیدند. از کشتی پیاده شدند و به جای اینکه به قصر سلطان بروند، به یکی از کاروانسراها رفتند و سه روز در آنجا ماندند تا مرزبان اصول فالگیری و استرلاب و ستاره شناسی را به قمر و زمان بیاموزد زمنن لباس مخصوص ستاره شناسان را هم برای او تهیه کرد و بر او پوشانید مرزبان مادر خود را دید و نقشه خود را به او گفت قمر و زمان طبق راه های مرزبان خود را به نزدیک قصر سلطان چین رساند و با صدای بلند فریاد زد من ستاره شناسی هستم که برای شفا دادن شاهصاد بدورا آمدم و حاضرم اگر او را معالجه نکنم جان خود را از دست بدهم گروه گرد او جمع شدند و دل آنها به جوانی و زیبایی او سوخت و به او گفتند حیف از جوانی تو است که جان خود را به خطر اندازی مگر تو سرهایی را که به دروازه ها آویخته اند ندیده ای همه آنها ماننده تو میخواستند شاهزاده را درمان کنند ولی جانشان را از دست دادند قمر و زمان سه بار با صدای بلند آمدگی خود را برای درمان شاهزاده اعلام کرد تانگ نخست وزیر از پنجره‌های قصر صدایش را شنید و دستور داد او را به حضور آوردند سپس او را به نزد شاه برد و معرفی کرد و زمان مقابل پای شاه بر زمین افتاد و آن را بوسید و آمادگی خود را به آگاهی رسانید شاه گفت جوان تو خیلی جوان هستی و تردید دارم تجربه کافی داشته باشی ولی بدان اگر شاه ساده را درمان نکنی جانت را از دست خواهی داد قمر و زمان پاسخ داد اگر به مهارت و دانش خود مطمئن نبودم این همه سختی سفر را بر خود هموار نمیکردم و خطرات مسافرت را استقبال نمیکردم شما نگران من نباشید و تردیدی در پیروزی من نداشته باشید آنگاه پادشاه رئیس نگهبانان داخلی قصر را فراخواند و گفت این جوان را به نزد شاهزاده ببرد در این موقع قمر و زمان به دنبال او راه افتاد و در وسط راه قمر و زمان که گام های بلندتری از رئیس نگهبانان برمی از او جلو افتاد رئیس نگهبانان گفت تو اولین ستار شناسی هستی که با این سرعت و اطمینان گام برمیداری و به سوی مرگ می در حالی که ستار قبلی با تردید و سستی حرکت می کردند قمر و زمان گفت من به پیروزی خود مطمئنم و آنهایی که می‌گویی اطمینان به کار خود نداشتند قمر زمان در این لحظه رو به رئیس نگهبانان کرد و گفت آیا مایلی در همین نقطه ای که هستم شاهزاده را درمان کنم یا وارد تالار شوم و از نزدیک درمان را آغاز نمایم رئیس نگهبانان پاسخ داد اینجا و آنجا مهم نیست آنچه همه در انتظارش هستند بهبودی و درمان اوست قمر زمان پاسخ داد برای من بهتر است از همینجا و بدون آنکه شاهزاده را ببینم به درمان او خواهم پرداخت تا به درجه مهارت من آگاه شوی آنگاه قلم و کاغذ از جیب خود درآورد و, و خطاب به شاهزاده خانم چنین نوشت: شاهزاده خانم محبوب، نویسنده این نامه شاهزاده زمان است که از آن شبی که تو را در حالت خواب در کنار خود دیده است، تا توان خود را از دست داده و با تمام وجودش عاشق تو گشته و تا رسیدن به وسال تو همه ناملایمات و سختی ها را بر خود هموار خواهد کرد. اینک انگشتری تو را به تو تقدیم میکنم تا در انگشت زیبایت جای دهی. و آن را به عنوان نماینده عشق بی پایانم بپذیری من از آن لحظه که چشمانم به سیمای زیبای چون خورشیدت روشنگردید دل خود را به تو دادم که هم می‌توانی با پس دادن انگشتری که من در انگشت تو کردم مرا خوشبخترین افراد عالم سازی و در صورتی که انگشترت را نفرستی آن را به بمنزله خکم نابودی خود تصور خواهم کرد زیرا من حاضرم به خاطر عشق تو جانم را در راه تو فدا کنم من در اتاق انتظار